نهای ایرانی نوشته سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده زهرا ستارزاده. زاده برگ مروارید توی شهری یه حاکمی بود سه تا پسر داشت و هر کدوم از این پسرها از یه مادر زاده شده بودن حاکم این شهر نابینا بود یه روز یه درویشی به خونه یه حاکم میاد و میگه درمون درد چشم شما رو میدونن اگه پسرها حاضر بشن که برن میتونن اونو بیارن جوای چشم تو برگ مرواریده ولی بر سر راه برگ مرواری سه قلعه وجود داره تو هر کدوم از اون های یه دیو زندگی می‌کنه. باید برن و با این دیف ها کشتی بگیرن و اونا رو به زمین بزنن. اون وقت می‌تونن که برگ مرواریت رو به دست بیارن، یعنی در واقع دیف ها بهشون یاد میدن. درویش اینو میگه و میره. فردای اون روز سه برادر آماده سفر میشن به راه میفتن تا اینکه بر سر یه راهی می راهی میرسن میبینن که روی یه لوح نوشته شده که هر سه برادر اگه بخوان از یه راه برن حلاک میشن پس در نتیجه یکی از این برادر را از راه راست بره و دوتای دیگه از راه چپ بره تا اینکه به هدفشون برسن برادرها با دلتنگی راضی میشن که برادر کوچکتره از راه راست بره و دو برادر بزرگتر از راه چپ برن بعد هر ستاش و رو در میارن و زیر یه سنگ میزنن تا وقتی بر میگردن از حال همدیگه با خبر بشن بعدش خداحافظی میکنن و از هم جدا میشن دو برادر بزرگتر به شهری میرسن و در اون شهر واسه خودشون یه کاری پیدا میکنه یکی شاگرد حلیمی میشه و دیگری شاگرد کله‌پزی ولی برادر کوچکتر وقتی که راه زیاد رو میره به یک قلعه میرسه در قلعه رو میزنه دختر پشت در میاد و در رو باز میکنه و میگه ای آدمیزاد تو اینجا چیکار میکنی ملک محمد میگه ای دختر منو را بده که دنبال یه مطلب اومدم. دختره میگه اگه برادرم بشنوه گوشت تو رو خام خام میخوره. ملک محمد میگه حالا بذار من بیام تو خدا بزرگه. دختر وردی میخونه و به اون فوت میکنه و اونو به شکل یه دست جارو در میاره و به گوشه خونه میذاره وقت غروب که میشه دیو به خونه میاد و صدا میزنه ای خواهر کسی تو این خونه هست من بوی آدمیزاد میشنوم دختره میگه میتونه کل خونه رو بگرده کسی اینجا نیست دیو همه جارو میگرده و چیزی پیدا نمیکنه. به خواهرش میگه راستشو بگو آدمیزاد رو چی کار کردی؟ میگه که اگه قسم بخوری به شیر مادر و برنج پدر که کاری به کارش نداشته باشی اونو میارن دیو قسم میخوره و پسر رو میاره وقتی پسر در برابر دیو ظاهر میشه دیو بهش میگه که ای زاد شیر خام خورده تو اینجا چی کار میکنه؟ میگه حقیقت اینه که پدرم کور شده و گفتن که برگ مروارید رو اگه روی چشمش بذارین حالش خوب میشه منم اومدم تا برگ مروارید رو ببرم دیو میگه ای ملک محمد رسم ما اینه هر آدمی زادی که اینجا میاد باهاش کشتی میگیریم اگه اون تونست ما رو به زمین بزنه من غلام حلقه به گوشش میشم ولی اگه ما رو به زمین بزنیم گوشتش خام خام میخورم ملک محمد قبول میکنه و باهاش کشتی میگیره و دیو رو به زمین میزنه بعد اون غلام حلقه به گوشش میشه شب رو همونجا میمونه و فردای اون روز باهاش خداحافظی میکنه و بعد از طی راه به قلعه دوم میرسه دومی هم به شکل اولی سپری میشه ملک محمد خداحافظی میکنه و به قلعه سومی میره قلعه سومی هم مثل دوتای اول دیوها رو شکست میده و دیوها غلام حلقه به گوشش میشن دیو میگه بگو ببینم چه مطلبی داری؟ میگه که به خاطر برگ مروارید اومدن دیو میره و دو است باد پیما میاره. به محمد میگه که اول به ظلمات میریم بعد از ظلمات بیرون میاییم و به یه باقی میرسیم. اون با من نمیتونم داخل باغ بشم. تو خودت میری و به درخت مرواریت میرسی یه چوب دو شاخه درست میکنی و با چوب برگ رو میچینیم. این باغ چهار تا نگه داره. وقتی تو رو میبینن یکی صدا میزنه چید اون یکی میگه برد اون یکی میگه کی اون یکی میگه چوب آخریم میگه چوب که نمیچینه وقتی که چیدی داخل یک کیسه میذاری و را میفتیم بسط حیات جانوران وحشی مثل شیر و پلنگ و امثال اونها خوابیدن کاری به کارشون نداشته باشی کاری به کارت نداره بعدش یه پله هست که چهل تا پله داره هر پله چهل تا زنگ داره چهل تیکه که پنبه بر و داخل زنگ ها میذاری بعدش بالا میری و وارد اتاقی میشی یه دخترتون اتاق خوابیده. بالا سرش یه لاله میسوزه و پایین پاش یه پیه میسوزه چراغ بالایی رو میاری پایینی و پایینی رو میبری بالا میذاری بعد یه جام آب وجود داره که آواز میخونه کنار دختره یه ظرف قضا و یه قلیون وجود داره. جام آبش رو میخوری و از صدا میافته. ظرف قضا رو هم نسمش رو میخوری. بعد یه پاتو میذاری این یه پاتو میذاری اونور یه بوس از این طرف صورتشو، یه بوس از اون طرف صورتش میکنی. بعدش دختره چل تا شلوار داره. که بند اون چهلتا رو باز میکنی و از اتاق میای بیرون من پشت باغ منتظرتم میای تا برگردیم ملک محمد میره و همه کارا رو انجام میده و برمیگرده شب رو تونه دیو میمونه فردا که خدافزی میکنه تا برگرده دیو بهش میگه خواهر من به تو تعلق داره ملک محمد قبول میکنه و دختر رو همراه خودش میبره تا به قلعه دوم و اول میرسن و هر تا دختر رو برمیداره و همراه خودش به شهرش برمیگردن. بر سر دوراهی که میرسه به فکر داداشاش می‌افته. میره و زیر سنگ و نگاه میکنه می‌بینه که انگوشترها اونجا میپهمه که داداشا به خونه بر نگشتن. بعدش دخترها رو میذاره سر چشمه و به شهر میره و داداشاش رو پیدا میکنه و واسه همهشون لباس میخره و برمیگرده. محمد میگه که حالا که همه کارا رو انجام دادیم من خیلی خستم. میخوام یکم بخوابم. وقتی که میخوابه دو داداش بزرگتر میگن که اگه به شهر برگردیم و پدر بفهمه که برگ مروارید رو داداش کوچیکه آورده میگه که شما بیارده پس بهتره که اونو از بین ببریم. بعدش ملک محمد رو داخل چاه میندازن. هبنشون به شهر برمیگردن اما دختر کچیکتره که نام زده. ملک محمد بود با اونا نمیره. میره بالای چاه و میگه ملک محمد یه صدای ضعیفی میشنوه و خوشحال میشه. میفهمه که محمد زنده است. به طرف شهر میره و یه تنوب تهیه میکنه و دوباره برمیگرده و ملک محمد رو نجات میده وقتی برادرانش به شهر میرسن پدرش میپرسه که ملک محمد کجاست میگن که غرق اونو خورده بعدش برگ مروارید و چشم پدر میذارن و چشم پدر خوب میشه پدر میگه که این پسر مادرش بد بوده اونو پشت بام همون بذارین و روز یک نان به او بدین. ملیک محمد که دختر نجاتش میده شبانه به طرف شهر پدرش میاد و میخبر تو اتاق خودش میره و میخوابه. اون دختره که صاحب برگ مروارید بود وقتی از خواب بیدار میشه حس میکنه که سرش سنگینی میکنه. میفهمه که این بلا به سرش اومده. روی گالیچه حضرت سلیمان میشینه و میگه به حق حضرت سلیمان میخوام که منو با این با به جای بری که برگ مرواریدو اونجا بردم با خرکت میکنه و پشت شهر ملک محمد میشینه فردای اون روز پدر ملک محمد وقتی که از خواب بیدار میشه میبینه قصری پهلوی امارتش پیدا شده رو میفرسته و میگه بریم ببینیم این کیه قلامه میره و برمیگرده میگه که صاحب برگ مرواریده حاکم دو پسرش رو صدا میکنه و میگه که صاحب برگ مروارید اومده میگه که غم نخور جوابشو میدیم. دختر غلامشو میفرسته که اون کسی که برگ مروارید رو آورده به من تحویل میدی یا اینکه شهرت رو با خاک یکسان میکنم. پسر بزرگ میره که جواب دختر رو بده. دختر میپرسه ای پسر این برگ مروارید رو تو آوردی؟ میگه بله. میپرسه از کجای باغ اینو آوردی؟ میگه که یه دیوار خرابه بود. از اونجا بالا رفتم. دختره میگه ای حاکم ببین باغ من دیوار خرابه داره. حاکم میگه نه خیر نداره. نوبت به پسر وسطی میرسه. اینم نمیتونه جواب بده. دختره میگه ای حاکم برو اونی که برگ مروارید رو آورده بیار. اینا به درد من نمیخورد. حاکم میگه که نکنه بلایی به سر آوردین. قلامش رو میفرسته و میگه بیخبر. برو ببین توی اتاق خودش نیومده؟ غلام وقتی پشت در میره میبینه که در از تو بسته شده. خبرو. رو واسه حاکم میبره و خلاصه در رو باز میکنن و حاکم ملک محمد رو میاره. حاکم میگه پسرم دستم به دامنه. صاحب برگ مرغارید اومده. خودت دیابا رو جوابشو بده. ملک محمد از اتاقش بیرون میاد و به طرف قصد دختره میره. دختر وقتی میبینه میگه تو برگ مرواری دو آوردی. ملک محمد میگه که بعد من آوردم. میپرسه که چجوری وارد قصد شدیم؟ میگه که کمندن داختم و خلاصه همه قضیه رو بهش تعریف میکنه. دختره میگه آفرین حالا بگو ببینم با من عروسی میکنی یا نه؟ ملک محمدم میگه با کمال میل بعد ملک محمد پدر و برادرانش رو درخواست میکنه میگه ای برادران من که به شما بد نکرده بودم من واستون لباس خریدم شما را از شاگردی آزاد کردم عوض خوبیای من این بود که منو به چاه بندازین بعد از پدرش میپرسه ای پدر من بد بودم مامانم که بد نبود بعد جفت شیرای نر و مادر رو صدا میزنه. شیرا میان تزیم میکنن و میپرسه چند روز گرست شیرا میگن که یه هفته است گرست ای بعد دو برادرش رو میخورن. بعد پلنگه رو صدا میزنه. میگه تو چند روز گرست ای میگه پنج روز گرست میگه تو هم پدرم رو بخوری بعد با دختر ازدواج میکنه و حاکم آن شهر میشه و سه خوهرهای دیوها رو هم میگیره و خلاص دارای چهار تا زن میشه.